مصنوی معنوی مولوی برنامه دهم هم در معنی آن که من اراده ایجلسه مالله فلیجلس مآه اهل تصوف آن رسول از خود بشد زین یک دو جام نی رسالت یاد ماندش نی پیام بالا اندر قدرت الله شد آن رسول اینجا رسید و شاه شد سیل چون آمد به دریا بحر گشت دانه چون آمد به مزره گشت کشت چون تعلق یافت نان با بلبشر نان مرده زنده گشتو و با خبر مو چون فدای نار شد ذات ظلمانی او انوار شد سنگ سرمه چون که شد در دیدگان گشت بینایی آنجا دیدبان ای خنک آن مرد که خود رسته شد در وجود زنده پیوسته شد وای آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از وی بجست چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا ور بخانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. برپذیرایی، چوبرخانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفص مرغ کو اندر قفص زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است روحهای کس ها رستند، انبیای رهبر شایستند از برون آباز شان آید زدین که ره رستن تو این است این ما بدین رستیم زیننگین قفص جز که این ره نیست چاره این قفص خیش را رنجور سازی زار زار تا تو را بیرون کنند از اشتهار که اشتهار خلق بند محکم است در رهین از بند آهن کی کم است قصه بازرگان که توتی محبوس او او را پیغام داد به توطیان هندوستان همگام رفتن به تجارت. بود بازرگان او را توتیه در قفص محبوس زیبا توتیه چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندوستان شدن آغاز کرد هر غلام و هر کنیزک را زجود گفت بحر تو چه آرم گوی زود هر یکی از وی مراد خواست کرد جمله را وعده بداد آن نیک مرد گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان گفتشان توتی که آنجا توتیان چون ببینی کن حال من بیان کن فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم در فراق؟ این روا باشد که من در بند سخت که شما بر سبزگاه بر درخت؟ این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در بوستان یاد آرید ای مهان زین مرغ زار یک سبوهی در میان مرغ زار یاد یاران یار را میمون بود خاصکان لیلی و این مجنون بود ای حریفان بطه موزون خود من قدها می خورم خون خود یک قده می نوش کن بر یاد من گر همی خواهی که بدهی داد من یا بیاد این فتاده خاک بیز چون که خردی بر خاک ریز ای عجب آن اهد و آن سوگند کو وعده های آن لب چونقند کو گر فراق بنده از بد بندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تربتر از سما و بانگ چنگ ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر نار تو این است نورت چون بود ماتمین تا خود که سورت چون بود از حلاوت ها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد غور تو ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند آشقم بر قهر و بر لطفش به جد بلعجب من عاشق این هر دو زد والله ار زین خار در بستان شوم همچو بلبل زین سبب نالان شوم، این عجب بلبل بل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان، این چه بلبل بل، این نهنگ آتشی است، جمله جمعه نخوشحاز عشق او را خوشی است، آشق کل است خود، کل است او، آشق خیش است او، عشق خیش جو، صفت اجنهه تویور اقول الهی قصه توتی جان زینسان بود کو کسه کو محرم مرغان بود کو یکی مرغ ضعیف بگناه گناه، او سلیمان با سپاه چون بنالت زار به شکر و گله افتدن در هفت گردون غلغله هر دمش صد نامه صد پیک از خدا یا بی زو شست لبایک از خدا ذلت او بیزطاعت نزد حق پیش کفرش جمله ایمانها ها خلق هردم او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهت صد تاج خاص صورتش بر خاک و جان بر لامکان لامکان فوق وهم سالکان لامکان نه که در فهم آیدد هر دم وی خیال زایدد بلمکان و لامکان در حکم او همچون در حکم بهشت چهارجو شرح این کوته کن و رخزین زین بتاب دم مزن والله و الله عالم به سباب. باز میگردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان، مرد بازرگان پذیرفت این پیام، رساند سوی جنس از وی سلام، دیدن خواجه توتیان هندوستان را دردشت و پیغام رسانیدن از آن توتی. چونکه که تا اقصای هندوستان رسید در بیابان توتی چنده بدید. مرکب پس آواز داد آن سلام و آن امانت باز داد توطی زانتوطیان لرزید بس او افتاد و مرد و بگسستش نفس پس پشیمان خاجه از گفت خبر گفت رفتم در هلاک جانور این مگر خیش است با آن توطییک این مگر دو جسم بود و روح یک این چرا کردم چرا دادم پیام سوختم بیچاره را زین گفت خام این زبان چون سنگ و هم آهنوش است وان چه بجهد از زبان چون آتش است سنگ و آهن را مزن بر هم گذاف ز روی نقل و گاه از روی لاف زان که تاریک است و هر سو پنبزار در میان پنبه چون باشد شرار ظالم آن قومی که چشمان دوختند زان سخنها را سوختند آلمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند جانها در اصل خود ایسادمند یک زمان زخمند و گاه مرهمند گر هجاب از جانها برخواستی گفته هر جانی ساستی گر سخن خواهی که گویی چون شکر صبر کن از هرس و این حلوا مخور صبر باشد های زیرکان هست حلوا آرزوی کودکان هر که صبر آورد گردون بر رود هر که حلوا خورد واپستر رود تفسیر قول فرید الدین اتار قدس الله روحه تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور که صاحب دل اگر زهر خورد آن انگبین باشد صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را آیان. زان که صحت یافت بس پرهیز رست، طالب مسکین میان در است. گفت پیغمبر که ای مرد جری، هن مکن با هیچ مطلوب مری. در تو نمرودیست آتش در مراو، رفتخواهی خواهی اول ابراهیم شو چون نهی سباه و نه دریایی در مایفگن خیش از خود رایی اوز آتش ورد احمر آورد از یانها سود بر سر آورد کامل گرخاک گیرد زر شود ناقص ار زر برد خاکستر شود چون قبول حق بود آن مرد راست دست او در کارها دست خداست دست ناقص دست شیطان است و دیو زان که اندر دام تکلیف است و ریو جهل آید پیش او دانش شود جهل شد علمه که در ناقص رود هرچی گیرد علتی علت شود. کفر گیرد کامل ملت شود. ای میری کرده پیاده با سوار سر نخواهی برد اکنون پای دار. تعظیم ساهران مر موسا را علیه السلام که چه می اول تو اندازی اصا یا ما؟ ساهران در عهد فرعون لعین چون مری کردند با موسی بکین، لیک موسی را مقدم داشتند، ساهران او را مکرم داشتند. زان که گفتندش که فرمان آن توست گر همه خواهی اصا توفگن نخست گفت نه اول شما ای ساهران افگان ایدان معکرها را در میان اینقدر قدر تعظیم دینشان را خرید کزمری آن دست و پاهاشان برید ساهران چون حق او بشناختند دست و پا در جرم آن در باختند لقمه و نکته است کامل را حلال تو نی کامل مخور می باش لال چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمود انس تو کودک اول چون بزاید شیر نوش مدت خاموش بود او جمله گوش مدت می بایدش لبدوختن از سخن تا او سخن آموختن ورنه باشد گوشو تیتی می کند خیشتن را گنگ گیتی می کند کر اصلی کش نبود زاغاز گوش لال باشد کی کند در نطق جوش زن که اول سم باید نطق را سوی منطق از ره سم اندرا ودخل الابیات من ابوابها ودلب الاغراز فی اسبابها نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بیتمع نیست. مبده از تو تابع استاد نه مصند جمله، ورا اسناد نه باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد و محتاج مثال. زین سخن گرنیستی نیستی بگانه دلق و گیر در ویرانه زان که آدم زان اتاب از عشق رست اشک تر باشد دم تو پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین تا بود گریان و نالان و هزین آدم از فرداس و از بالای هفت، پای ماچان از برای آز رفت. گرز پشت آدمی و صلب او در طلب می باش، هم در طلب او. ذاتش دل واب دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز، تو چه دانی قدر آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن. بعد از آنش با ملک باز کن تا تو تاریک و ملول و تیرایی دان که با دیو لعین همشیرایی لقمه ای کو نور افزود و کمال آن بود آورده از کسب حلال روغن که چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید، را دان حرام هیچ گندم کاری و جو بردهد ای اسبی که کره خر لقمه تخم است و برش اندیشه ها لقمه بهر و گوهرش اندیشه ها زاید از لقمه حلال اندردهان، میل خدمت، عزم رفتن آن جهان بازگفتن بازرگان با توتی، آن چه دید از توتیان هندوستان بازرگان تجارت را تمام باز آمد سوی منزل دوست کام هر غلام را بیاورد ارمغان هر کنیزک را ببخشید اون نشان گفت توتی ارمغان بندکو آن چی دیدی و آنچه گفتی باز گو گفت نه من خود پشیمانم شیمانم دست خود و انگشتان گزان من چرا پیغام خامه از گزاف بردم از بیدانشی و از نشاف گفت ای خاجه پشیمانی ز چیست چیست آنکین خشم و غم را است گفت گفتم آن شکایت های تو با گروه توتیان همتای تو آن یکی توتی دردت بوی برد زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشایمان گشتم این گفتن چه بود لیک چون گفتم پشیمانی چه سود نقطه کن جست ناگه از زبان همچو تیر دان که جست آن از کمان و نگردد از ره آن تیر ای پسر، بند باید کرد سیل راز سر. چون گذشت از سر جهان را گرفت، گر جهان ویران ایران کند، نبود شگفت. فیل را در غیب اثرها زاده نیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست، بی که جمله مخلوق خداست آن موالید ارچه نسبتشان به ماست زید پرانید تیر سوی امر امر را بگرفت تیرش همچون نمر مدت سال همه زایید درد دردها را آفریند حق نمرد زید رامی آن د مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا عجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. آن وجعها را بدو منصوب دار. گرچه هست آن جمله سن کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جما، آن موالیده است حق را مستطا. اولیه را هست قدرت از علاه تیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب. چون پشیمان شد ولی زاندست رب. گفت گفته کند از فتح باب. تا از آن نسیخ سوزد نکباب از همه دلها که آن نقطه شنید آن سخن را کرد محو ناپدید گرد برهان باید و حجت مها باز من آیت او ها آیت انسوکم و ذکری بخوان، قدرت نسیان نهادنشان بدان چون به تسکیر و به نسیان قادرند بر همه دلهای خلقان قاهرند چون به با نسیان بست او راه نظر کار نتوان کرد ور باشد هنر خلتم و سخریت اهل سمو از نوبی خانید تا انسو صاحب ده پادشاه جسم هاست صاحب دل شاه دلهای شماست فرعدید آمد عمل بهی شک پس نباشد مردم الا مردمک من تمام این نیارم گفت از آن من می آید ز صاحب مرکزان چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان صد هزاران نیک و بد را آن بهی می کند هر شب زدل هاشان تهی روز دل ها را از آن پر می کند آن صدف ها را پر از در می کند آن همه اندیشه پیشان ها می شناسد از هدایت جان ها پیش و فرهنگ تو آید تو، تا در اسباب بکشاید به تو پیشه زرگر به آهنگر نشد خوی این خوشخو به آن منکر نشد پیش ها و خلق ها همچون جهیز سوی خسم روز راست خیز پیش ها و خلق ها از بعد خواب با آید هم به خسم خود شتاب پیشه‌ها و اندیشه ها در وقت صبح هم بدان جا شد که بود آن حسن و قب چون کبوترهای پیک از شهرها سوی شهر خیش آرد بهرها